متكلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد مشو غره بر حسن گفتار فیش، به تحسین نادان و پندار خیش